بسم الله الرحمن الرحیم کورسی تربیجی امکانسنجی استخدام انگاره بحتان برای حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی دوشنبه 24 بهمل ماه 1401 اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد محمد الرحمن الله والفتح نا سیت خلوا نفین الله افواج فصبح بحمد ربیک الو الو محمد الله و سلام و ادب و احترام دارم خدمت سردار محترم توفیر شد در راستای انجام اوامر وجوه مسلمین حضرت محمد علی متذله الی که در سال 8 در پاسخ به نامه ای از طلاب تحکید داشتن مبنی و تلویج کرسی های نظریه پردازی و نقد و بررسی اقدامی رو داشته باشیم انشاءالله و در یک کرسی دیگری با بررسی کرسی تلویجی با افعاد امکانسنجی استخدام راهی بهتان برای حفظ نظام از دیگرهای مانفرانی رحمت الله علیه در خدمت سهران و حاجادر اسلام آقای آجای سید احسان رفیعی علوی هستیم و حجت الاسلام و آقای میلاد مرادی به عنوان ارای دهنده و در خدمت سرداران آیت الله بساتیت بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد قاسمی و حجت الاسلام و المسلمین علی صالحی منش به عنوان نانادین بخش در خدمتشون کاهندم ان شاء درکت جلسه یک بیان اجمالی از بحث با عنوان مسئله داشته باشم خدمت سربر و نجمند از ارائه ارائه دهنددان محترم استفاده خواهیم کرد اگر سرما ص بدانن یک ارائه اجمالی پیش. این جلسه هم وجود کرد عنوانش مشخصه کل دو تا بحث که باید شده ما تو اینجا دور هم جمع بشیم پس اولی حدیث فقی و عنوان فقی مباهته هستش که در از عبارتی از یکی از احادیثی که در کافی شریف جلد دو صفیه 375 حدیث چهار حدیثی اومده که در سلسلی رو با پیشن سلسلی هستش عبارت حدیث این گونه هستش که ازا رایتم اهل رایب اهل رایب و بدع من بعدی فضهر البراعت من هم و اکس رو من سب بهم و قبول فیهم، هم و باه تو این عبارت باه تو که در حدیث گرفته شده باعث ایجاد دو تا دیدگاه و دو تا نظر در بین فقه ها شده گروهی از فقها نظیر فیض کاشانی، مولا صادق مازندارانی، علامه حلی و سیطا آیات عزام سبحانی مکارم شیرازی و بزرگواران این باهدوهو را ترجم، باه ترجمه باهدوهوم ترجمه کردند به معنای اقناع و آوردن دلایل محکم در برابر مخالفان و مفقود ساختن آنها و در نتیجه جواز بهتان به بدعت سازان و شکاکان رو مردود دونستند در مقابل برخ دیگر از علما و آیات عظام نظیر خویی گلپایدار و مباهتر رو در حدیث شریف به معنای تهمت زدن ترجمه کردند و با استناد به این حدیث حکم به جواز دروغ بافتن و تهمت زدن به اهل ریب و بدعت دادند. بو از پیامط این حدیث تجویز این حدیث و این رویش دوم اینه که ما برای رسیدن به, وسائل, به هدف خودمون به هر وسیلی میتونیم دست بیندازیم و خب ناظر به این و اصلاف اسلامی سری نقط های مثلا میچکن شده از توی دیگه توی این پرزوری سم تلاش شده که ادهی هم با استناد به این حدیث تلاش کردن این روی جمهوری اسلامی ایران به بهانه حفظ نظام بختان و افتراب منتقدین نظام رو از سوی امام و رهبری تجویز کرده و در همین راستا مشاهده میکنیم بیویسی بی مستندی رو تهیه کرده با عنوان بختان برای حفظ نظام که جمهوری اسلامی ایران با تجویزی که از رهبران و اماماین انقلابش داره برای حفظ خودش به هر کاری دست میزنه این جلسه در پاسخ به این شبهات ها تشکیل شده که آیا حسن حضرت امام برماتولو علیه چه تفسیری دارن چه معنایی از این روایت رو ارائه میدن و آیا اصلا این کار و این مطلوب صحیح هستش که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ خودش و برای وقای خودش دست به هر کار رو روشی بزن اگر اجازه بدن سروران در خدمت سروران عزمان خواهیم بود برای رایه بعد بر. هر سلام بدونیم تیز در ضرف یک نیم ساعتی حالا مدیریت بخواهم که رای بحث بشه و بعد از اون در خدمت ناغذین محترم بشه سلامه اول من ببینیم کار را آلیم. بعد صحبت بشه آلیم. فکر می‌کنم به جهت تدقیق در فقهی در مسئله اگر صلاح بدونن آقایون اول بررشهایی از این مستند رو که مدعای فکری اخلاقیشون هست ببینیم اولتون جز میز بعد بگیم خب یه قسمتی را اینطور پیش میبریم یه قسمتی را از بحث بگن آقای مرادی بعد هرجم صلاح منستن بگن در لغت چیز پخش بشه ب خواهش میکنم, میکنم. و الله اون شرطان ریم اسما لا رحمان همونطور که اشاره شد در سال 1397 مستند یه شبکه بی بی سی برخ شد در این مستند افراد بسیاری صحبت کردن اما صاحب نظریه آقای کدیور هست تو این مستند اتهامی رو متوجه حضرت امام به عنوان بنیان بزار جمهوری اسلامی و سپس مقام معظم رهبری و تمام ارکان نظام میکنن با این عنوان که لزوم وجوب حفظ نظام حفظ نظام جمهوری اسلامی باعث میشه که آبه روی افراد اهمیتی نداشته باشه و پیش مخالفان سیاسی رو با دروغ و بحتان و هر امر خلاف واقعی از میدان به در کرد و از چشم مردم انداخت. در این رابطه روایتی محل بحث هست. اشاره کردن بزرگار پیامبر برای مقابله با اهل بدعه چند تا روش پیشنهاد میدن. بیزاری جستن، ناسزا گفتن، دوری کردن و عنوان باهتو هم هست. در این عنوان نظریه های مختلفی مطرح شده سه تا نظریه بیان کردن فوقه ها اولی دلیل محکم هست به این معنا که آنچنان با استدلال برخورد کنیم با اهل بدعت که مات و مبهود بشن اشاره به آیه فبوه تلدی کفر می ماجرای حضرت ابراهیم و حیران شدن نمرود خدمت شما آرزم که در این رابطه فوقه ها اون شاکیلیده که استناد می حدیثی هست با عنوان ازازهرت البدا با عنوان اینکه وجود وجوب اظهار علم فقاها میگن ما روایت داریم روایت دیگری داریم که بر ما علمای دین واجب هست که علمشون رو اظهار کنن این روایت در نوع خودش هست ای دیگر از علما گروه دوم جواز بختان رو مطرح میکنن شاکی لیده ادهی دیگه از این علما مصلحت امت اسلامی هست برای اینکه مردم گمراه نشن و از اهل بدعت پیروی نکنند فرمودند که این همون معنای بختان رو داره نظریه سوم ایده این روایت رو مطرح کردن اما به این قطعه به این عنوان باهتو هم نپذیرفتن معنای مشخصی رو ذکر نکردن. اخیرا آیه اراکی معنا کردن گفتن که برخورد سریح یعنی نه بختان و نه حیرت میشه اینو بگیم که با سریح باید برخورد کرد یعنی با کنایه و تعارف و ملاحظه دیپلماتیکی در کار نیست اما با بررسی آثار حضرت امام در هیچ یک از آثار حضرت امام این استناد به این حدیث دیده نمیشه مدعی از, مدعی از سال 1390 تا 98 دو کتاب و هفت مقاله تا که من شمردم پیرامون این موضوع تهیه کردن ادعای خودشون رو اول از صوت حضرت امام مطرح میکنند که اینجا ما صوت آماده کردیم خدمت عزیزان ها همین چه در دومتی بستن اشنام به واسه چه را برای خاطر معافیه و همکار معافیه این آدم همده این آخر میشه که را تکم دادن و میشنن و را شدار میکنن این ها یک بازی filt demonstیتون. این 장ی نراید مادی در درشت آنها épه چی切 گرهد در آی کدیور اعتقاد دارن که بیان حضرت امام از یک روایتی که حالا یادم نیست روایت داودون سرحان همون روایت مباهته هست اده اومدن تشکیق کردن در نظر آهی کدیور گفتن که امام بدون بیان قبلی این نظر رو بیان کردن آی کدیور میگن که نه قطعا مدلولشون روایت بختان بوده از اونجایی که میتونستن مفوتشون کنید رو به کار ببرن عده دیگه اومدن گفتن حضرت امام بررسی سندی انجام ندادن آیه کدیور میگن دلالت انقدر که صحیح و سندت از اون روایت امامن نظر سندی نیازی نمیدیدن که بیان کنن و فقط تطبیق بر مصادیق رو لازم دیدن در جواب کسانی هم که میگن امام در یک از آثار خودشون این عبارت رو بحث نکردن آیه کدیور میگن که عدم ارتباط با مباحث کتاب البی امام بوده. وگرنه اینو بررسی میکردن. اه آی کدی بر دیگه ای دارن که از سال 1349 این مپ از کتاب حذف شده. اولین چاپی که بعد از سخنانی امام بیرون میاد تحت عنوان پوششی بوده چون کتابای از امام ممنوع بودن چاپ بشن پوششی بوده به اسم ای از امام موسی کاشه پولگتا. ا ما هایی که کردیم تو کتابخونه ملی جستجو کردیم اولین عنوان رو پیدا کردیم تا از سال 1372 تا اکنون که موسسه عهدهدار چاپ به این کتاب ها هست هیچ حسی صورت نگرفته. حالا دیگه های کلیور چطور اون سفر رو تو کانال تلگرامیشون قرار دارن واقعا باید از خودشون پرسجو کنیم. جدای به تمام این توضیحات برای ادعای هست خود های کیور یه گذاری تاریخی رو ذکر می کنن. از خاطرات های فردوسیپور. پور صفحه 141 کش آی فرروسی پور دارن که بعد از این که صحبت ها ارائه می ما می اومدیم اینا رو پیادستازی می کردیم و به حالت گفتار رو به نوشتار تبدیل می کردیم و به خود امام ارائه می دادیم امام بعضی قسمت ها رو حذف می کردن. حتی بعضا چندین بار یه قسمتی رو امام تشکیک می کردن می این جا اینجا باشد و اینجا نباشد پس ادعای حذف از نظر ما یه ادعای باطل و بیهودهی است اما شرح واقع بدیم از این که حضرت امام مد... می دونید که کتابهای فقهیشون رو سالها قبل مثلا کتاب بخش اشتهاد و تقلید رو از کتاب رسائلشون سال 1329 به قلم خودشون نگاشتن سالها قبل از این درس ولایت فقیه بوده و بعد با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب و برای افسایش آگاهی عموم مردم مطلاب حضرت امام دوازده جلسه درس ولایت فقیه رو گذاشتن که در این در جلسه بیشتر به بحث روایی ادله لزوم تشکیل حکومت و اینکه فقه ها چه جایگاهی داره، جایگاهی که تقریبا فراموش شده بوده برای تلابی که خودشونو منحصر در دعا خوندن و عدیه می میدونستان و اعتقاد داشتن کاری دست ما بر نمیاد. امام بعد از اینکه این, این ده تا روایت رو بررسی میکنن، میان به مضمون روایت الف فقه ها و و رسول اشاره میکنن. یه قسمت هایی از درس و من خدمتون ارس کنم امام میفهمه ما, ما حاکم امین میخواهیم که ملت به او پناه ببرن حوزه های روحانیت محل تدریس و امانتداری داری است. ها نائب امیر و ولی امر مسلمین هستن این جایگاه رو برای فقها ها برمیشمورن و میفهمهن فقه هایی که وارد دستگاه زلمه و تابوت میشوند اینها سلطان جائر هستند و اینا نمیتونن امین باشن مفاد روایت امین الله و بعد با امین نبودن با اشاره به روایت امین الله و امین نبودن آخندهای دنیا دنیاطلب و وابسته به سلاطین میان لزوم متهم کردن فقهایی که وارد دستگاه ظلمه شدن رو مطرح میکنه تو الان باید اشاره کنیم به امین به روایت امنا و رسول روایت امنا و رسول دو تا نقل ازش مطرح شده پیامبر فرمودند الفقه ها و منا و رسول پیانب... فقه ها جانشینان پیامبر هستند. تا زمانی که داخل در امور دنیا نشده باشن سوال میشه که امور دنیا چیست میفرماین اتباع و سلطان پیروی کردن از حاکم زل در این این روایت داره هم علا دینو کن. در بعضی دیگه از نقل ها هست فتهمو هم یعنی امام بعد از اینکه امین الله امین امین بودن و جدا بودن از این که امین نیستن اخوندای دنیا طلب و وابسته حضرت امام منظورشون فتحمو هم بوده نه باه تو که منظور آقای کدیور هست به این توضیحاتی که عرض شد خدمتتون علاوه بر این که در یک از آثار امام هم تهمت بزنید و اشاره به روایت باه تو هم نیست در چندین جلسه قبل از این صورتی که خدمت عزیزان پخش شد امام استناد کردن برای مقابله با اهل بدعت در روایت وجوب اظهار علم همون روایت ازاظاهر التبدفل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله امام استناد به این روایت خودش دلیل و محکمی است برای ابهام زدایی از فقه سیاسی حضرت امام و رد ادعای آقای کدیبر این قسمتی دیگه از اصل 48 رژیم شاه در تفکرات خودش آخر اخایون رو که روابط حسنه با ایش داشتن و باعث شدن کرد. آی خاص اینها رو روحانی درباریه میخونه و به نحوی به پیروار خودشون مجذز شون میده که برید بهلا بر خورد بکاری. روحانی درباری رو حضرت امام به خوبی نامگذاری کردن، جعل واژه‌ای میکنن با نام روحانی درباری. اما اونطوری که آقای کدیور تو این مستند و تو کتاب‌هاشون دارن میگن روحانیونی که رابطه حسنه داشتن با دربار نبودن. بلکه روحانیونی بودند و حداقل های شرعی پایون نبودند سلام علیکم به حد اقل های شرعیشون پایون نبودند و به دستفوسی همسر شاه می تحت کسبت روحانیت با لباس روحانیت روحانیون درباری, درباری کسانی بودند که با لباس روحانیت به دسترسی همسر شاه می رفتند و برای شاه دعای سفر میخوندن شاه رو زل الله میدونستن و به این حد درقل های شرعی پایبند نبودن که ادعای امام منظور حضرت امام از این که از این اشخاص به ترسیل درباره تهمت غیر اخلاقی دلالتی نمیبینیم بلکه صرفاً حضرت امام در صدد تشهیر این اشخاص بودن بعد از این ذکر روایت امین الله و اینها و جدای به این باید به بحث سپاه دین اشاره کرد همونطور که تو تصویر میبینید روزنامه اطلاعات چاپ اول آبان 1350 از یه سپاهی نام میبره به اسم سپاه دین خیلی از عزیزان با سپاه دانش آشنایی دارن. ولی در حالی که بصیرت و بینش حضرت امام طوری بوده که تو همون اوایل انقلاب سال دهه پنجاه و چهر از سپاه دین هم اطلاع داشتن سپاه دین پدیده نامیمون و نامبارکی بوده که به دستور شاه بعد از تجربه تلخ کودتای 28 مرداد تشکیل شده که روحانیون برخی از سواکی ها و کسانی که حقوق بهیر و اوقاف هستند به کسفت روحانیت در می آمدن. اینجا می به متن روزنامه سنات کنیم که سپاهیان دین پس از پایان خدمت آموزشی از لباس روحانیت استفاده خواهند کرد که گزارای تاریخی هم هستن حالا اینجا ما صحت صبح مشو نمیدونیم همونطور که خدا آیی و گزارای تاریخی استناد کنند کسانی در جلسات درسای امام بودند که حضرت امام دستور میدادن که الان امام‌ها باز واس یه نفر بلد نبود امام بفنده و رسوا می‌شد که این همون ساواکیه که اومده درسو به هم بزنه یا در درس لطمی وارد کنه. در قسمت بعد آی کلی بر نظر آی مهممن رو بررسی میکن نظر آی مومن در یک قلتی واقع شده که ابتدای عبارتشون با عبارت اللهم لا انیقال مگر اینکه گفته شود که به مسبهه همین فعمل یا ففهم های عبارت های هستند که اشاره به اشکال ننگفته در متن داره که موارد اشاره به ضعف و تکم آمیز بودن متن داره، و از این هم نمیشه استناد فقی کرد. و باید اشاره داشت که روایت ابن سرهان هر چقدر هم ما مدلولش رو قانع کننده بدونیم اما تفاوت بسیاری داره با مخالف سیاسی. از این جهت هم باید بهش بپردازیم. مدرسه آی کدیبه خیلی اصرار دارن به اینکه یه عبارتی رو جعل کنند رسو مدرسه آقای خمینی. با این توضیح که تمام نظام به پیروی از حضرت امام این نظریه رو می و بهش عمل می کردن. در حالی که واقعا سوال مطرحه دو تا فقیهی که خودشون صاحب اندیشه ها و نظریات مخصوص خودشون هستن آیا در یک منهج و در یک جایگاه واقع میشن یا خیر؟ این قسمت دیگه از صوت هست موسن کدیبه در کتاب انقلاب و نظام در گوته نرد اخلاقی ارزیابی مواجهه جمهوری اسلامی با آیت الله سهی محمد روحان سردی یکی از مراجع تایید مذوانی بهتان رو بازخانی کرده آیت الله روحانی در مرحله تایید آیت الله خمینی به نجف در فاصله سالهای 1344 تا 1356 احتمالا معروف روحانی مخالف روح در این شهر بود از سال 40 و حواشی رو علی خمینی اتهامات متوجه آقای روحانی کرده. و این اتهامات سه تا اتهام بود همونطور که در کلیپ مشاهده کردید، آیه کدیبر های تاریخی رو از مقابله حواداران حضرت امام با حواداران آی روحانی مطرح کنند. از این گزاره‌ها که صحت و می شود بررسی این گزاره ها چون ما بررسی فقهی بیشتر مد نظرمون بوده، میتونیم یه چیزی رو استنباط کنیم که فراتر از نزاع شخصی بودن و در اساس نزاع اصولی و گفتمان میان دو تا حوزه جهان تشیع بودن. و اینکه که هواداران کسی عملی رو انجام میدن نمیشه، واقعا در استنبات فقیقی ازش استنبات کرد. و اینکه فضای عمومی حوزه نجف، مشی سیاسی شاگردان و هواداران حضرت امام رو شاید بر نمیتابیدن و حتی آشنایی نداشتن با این. امام در فضای تبعید بودن و از هر گروه و هر اندیشه خدمت امام میرسیدن. همونطور که میدونید، حتی گروه مجاهدین خلقم خدمت امام میر اینکه هر هواداری هر طرفداری کاری بکنه اینو ما نمیتونیم ازش از استنبات فرقی کنیم و جدای به اینها خود آقای کدیور تو این گزاره‌هایی که ذکر می‌کنن تو کلیپ هم مشاهده کردیم میگن سه تا اتهام که از این سه تا اتهام دو تاش رو امام برخورد می‌کنه اما یکیش رو امام برخورد نکردن و قطعا اعتقادشون بوده به اینکه اینطور باشه اما حضرت امام در اون دو موردی که برخورد با روحانی آقای صدر بوده، آقای محمد باقر صدر و امام موسا صدر بوده که ظاهرا تو این گزاره ذکر کردن دو نفر خدمت توی جلسه ای بودن که بعد گویی از آقایون صدر میکنن و بعد به گوش حضرت امام میرسه و امام درس تعطیل میکنن و حتی در تو خود گزاره تاریخی ذکر شده برای اولین بار در نماز مغرب و عشا تعداد رکتاشونم اشتباه میکنن امام که تا این حد حساسیت داشته و تا این حد خود مدعی به این گزاره ها اسفنات میکنه اما با این گزاره ها میخواد یک ادعای فقی رو انجام مده حالا برای ادامه بحث خاجه خب من یک کوتاه صحبت میکنم که از قیانات ناقدین محترم هم استفاده بکنیم اولا که تشکر میکنم آقای مرادی زحمت کشیدن خیلی خوب اشاره کردن اصلا داستان نسبت فقه و اخلاق نقطه قانونی در واقعیت تفکریه که معتقد از اونجایی که فقه نمیتونه گزاره اخلاقی جهان شمول سیاسی داشته باشه لذا صلاحیت اداره نظم اجتماعی را هم نداره این ای که پنهان شده در تعابیر فقهی تاریخی و اجتماعی در گزاره ها که واقعا برخی از ادعاها را میشه یک ادعای فقهی درک کرد اما برخی از ادعاها را اصلا نه یک ادعای اجتماعی نه یک ادعای, ادعای صرف نزدیک که به مرزهای های کذب میشه تلقی کرد ادعاهایی که در این در واقعیت فکر وجود داره چون برخی از گزارهایی هایی که تحت عنوان مستند این فکر در واقعیت ارائه میشه واقعا به سختی حتی اصل ادعا قابل استمباته و نمیشه گفت یک اشتباه در کار وجود داره این یک نکته از نکته اولی که ما اگر این مطلبی را که در مدعای شخص مدعی وجود داره که فقه انگاره های اخلاقی رو نمیتونه بربتابه خصوصا فقه سیاسی که چهل سال حکمرانی داره میکنه و یک جمعی را در این کانون فکری قرار میده تحت عنوان مدرسه امام مدرسه آقای خمینی در واقع اگر بتونه این رو اثبات بکنه خب دیگه طباعتا اساسا جریان مقابل خیلی کارش راحت هست به این جهت که دیگه خب ثابت میکنه اساسا هر حرفی از طرف حکومت اسلامی یک نوع دروغ یک نوعی بدعت به اهل ریب مثلا تلقی میشه و تقریبا ما هیچ گذاره ثابتی در فقه سیاسی نداریم و تقریبا اساسا میشه به اعتبار وجود این انگاره در واقعیت همه مرزهای اخلاقی همه مرزهای فقهی همه مرزهای شرعی رو در نوردید و در واقعیت خیلی راحت میشه گفت که اساساً نظام سیاسی فخ سیاسی از ما مبتنی بر مثلا این نوع تفکر قالزا نقد قانونی که متوجه بود بدون در نظر گرفتن اینکه این ادعا درست غلط و واقعا ما با پیش داوری سراغ این نکته رفتیم نرفتیم که مثلا حالا دنبال اثبات این باشیم که واقعا آیه امام در فقهشون دارن یا ندارن که بعضی از بزرگان ما دارند این تعبیر را که میشه مثلا فرض کرد مثال هایی را زدند از آقایان از برخی از مراجع معظم تقلید ماضیه و در حال حاضر که خب معتقد بودند به این روایت داوود بن سرحان و مستفسر از روایت داوود بن سرحان کم هست ولی همه در اوج اتخانه در کافی شریف هست، در منابع معتبر ما است لذا ما آمدیم یک ای رو ترتیب دادیم دقیق که هم فقه سیاسیش رو ببینیم هم دنباله اجتماعی این فتاها رو ببینیم ببینیم که داتا چه حد در واقعیت مستحکم است شاه بیت بحث ما در واقع در این تحقیق که اشارات مستقیم کردن بهش اینه که اولاً اساساً امام هیچ جا برداشت در واقعیت بدعت و در واقع باه تهم رو به معنایی که معنای خاصی که برخی از فقها داشتن در متون قلمی و متون حتی تدریسی خودشون نداشتند این در مدحث ما یعنی اساساً امام هیچ جا به این روایت استناد چنین چنین استنادی نداره چنین و حتی استنادی اصلا به این روایت به این معنا نداره جایی هم که یک اشارهی هست فرمودن که روایت دیگریست روایت, دیگر روایت اون معناست که اون بحثش داره. یکی این نکته است که اون است که ایشون میخواد بگه دنبال فقهی ما هم این گونه بودند مرحوم مؤمن و مقام معذب رهبرین. رو مرحوم مؤمن نه تو فقهشون چنین تعبیری دارند و بعدا هم در یک مصاحبه مطبوعاتی که کردن مفصلا عدم پایبندیشون رو به این موضوع در واقع موضوع گفتن این نه در متون فقهیشون تو متون فقهیشون یه قول تا نقلتی دارن اما اصلا مصاحبه رسمی دارن که این ادعا رد میکنند و از اون طرف ما به متون دروس فقهی مقام معظم رهبری هم که مراجعه کردیم چونشون بحث غیبت رو بحث کردند و در مستثنیات غیبت موضوع مطرح میشه ایشون حتی در مستثنیات غیبتشون هم چنین روایت به این معنا و با این توسعه مفهومی که در واقعیت مفهوم بسیار گسترده ای در واقعیت از بدعت که خلاف اصل اولی غیبت هم هست اساساً نپذیرفتند و در واقعیت این برداشت از روایت رو نمیشه از بیانات ایشون استفاده کرد بیانات ایشون هم بیانات دقیق و است که من الان در ما مقام ترهش نیستم رو نظر ایشون علا ایه حاله نه در مقام حدوس در فکر فقه سیاسی امام یه همچین ای رو ما میتونیم در واقع تسبیت بکنیم و نه در دنباله فقهی مدرسه فقهی امام اگر آقای مؤمن و مقام معظم رهبری دنباله فقهی مدرسه فقیه امام بدانیم اساسا در مدرسه فقیه امام چنین انگاره جایی نداره و توجه و تفتون سیاسی امام خیلی بیشتر از این هست و اون صوتی هم که الان پخ شد اولا مشخصه که در مقام افتاع نیست اولا و دومن دو این که خودشون با دقت در وقتی مت را اصلاح کرد مترو پیاده کردن کامل کردن بردن خدمت ایشون،, ایشون خودشون از مت این قسمت رو هم حصف کردن نشون میده که ایشون در مقام تره وجود چنین دیدگاهی بودن که ما وجود این دیدگاه رو در در واقعیت فقه این کار کنیم یک دیدگاهی طرفداران قویم شما آراء مرحوم آیت تبریزی مرحوم آقای خوئی مرحوم آیت گلپایگانی و دیگران نگاه بکنید از قوت برخوردار هم از پشتوانه کلامی برخورداره هم از پشتوانه فقهی برخوردار اونایی می‌خوایم وجود چنین دیدگاهی رو اساساً در فقه انکار بکنیم چه اینکه امام هم در اون بیانشون دقیقاً دارن همین موضوع اشاره می‌کنن چنین دیدگاهی وجود داره یعنی این که یک توجهی وجود داره تا با این که یک فتفایی وجود داشته باشه اصلا کاملا متفاوت است. حالا ولیزا تقریبا ای که در واقع میگیرند باطل است. این از یک جهت تره فقهی با این که ما اصلا اهل بدعت را با باه توهم بتونیم در واقعیت نقد بکنیم. نکته دوم این هست که آیا اگر این روایت و این توسعه استنباطی که برخی از فقیهان کردند و ما گفتیم امام نداره درست باشه آیا واقعا ادعای ایشون نسبت به مرحومای روحانی یا مخالفان سیاسی از امام آیا اینها اهل بدعت حساب میشن این هم در محاق تقرید که ما بتونیم در واقعیت مخالفان مشیه در واقع سیاسی امام را اهل بدعت بنامیم درسته که امام در واقع وجود نظام سیاسی براشون از ارزش بالایی برخورداره اما به هیچ عنوان نمیتونیم برخی از مخالفین رو که ایشون اسم اهل بدعت تلقی بکنیم چون تعریف اهل بدعت نسبت به فقها یک امر مشخصی است و در واقعیت تو تعابیرشون هم هست که اینها در واقعیت خدمت شما عرض بکنن به چه معنی بدعت رو دارن به سراحت اهل بدعت رو تعریف میکنن امام هم اتفاقا اهل بدعت رو خودشون تعریف دارن تو شمول تعریف اهل بدعت از طرف امام همینها قرار نمیتونن بگیرند لذا یک به جهت موضوع شناختی که موضوعا اهل بدد چه کسانی هستند که باه تو هم نسبت بهشون جواز داشته باشه محل تردیده و دو اینکه که اصلا در فقه, امام، در فقه سیاسی امام این پدیده در واقعیت خدمت شما عرض کنم وجود نداره حالا ایشون میاد یک سری قرائنی را از سیره اجتماعی سیاسی مطرح میکنه که قرائنی که ایشون مطرح میکنه که مثلا فلان تو داشتن فلان حرف رو میزادن امام خندی اولا که نقد داره یعنی کسانی هستن اصل اون زیر سآل بیبرم. گزارش زیر سوال میبرن لذا گزارشگری ایشون ناقصه و ثانیاً این که مثلا فرض بکنید مثل همین الان بگه همه جریان های فکر اجتماعی رو میشه نقد کرد حالا کسی خندیده به کسی و بعداً مثلا کسی دیگه بهش خندیده دلایل دار حکم فقهیش فتواش میکنه مستهذر توی استناد به رأی فقهی ما خیلی دقت داریم خیلی احتیاط داریم با این قرینه ها نمیشه به کسی خلاصه چیزی را بس. به نظر من یه نوع بافتن وجود داره در اصل متن. من اراده می‌کنم کوتاه می‌کنم خاطر استاد ارجمند آقای دکتر قاسمی هستن استفاده میکنم از خیانات ایشون. خالصانه. قبلای سالی هست. یه من یه تحویلی برای شما می‌زنم. تشکر می‌کنیم از صبر و همراهی الاسلام رفیقی علوی و مرادی که زحمت کشیدند و یک تقریر رسیار بیان بسیار شیوا شیبین و دقیق و علمی و منضبطی را از بحث ارائه کردن هاید به جهت بلوشن شدن بحثی که دیگه یک مختصر اجمالا از بحثی که توسط عیز مهده شد اشارهی میکنند تا در خدمت ناغذین محترم جنابه های خوزر افتران و محسنی صالحیمانه ایش فرانی شد دکتر قاسمی باشیم دردی بردر از ایمون آهی مرادی اشاره داشتم که به محسنانات که از بود اشاره کردم و فرمودم که محسنانات درصد صدر هستش که حفظ نظام جنبوری اسلامی ایران باید صورت بگیره و آبروی افراد نظام در راستای این حفظ نظام موضوعیت نداره افراد جامعه با. موضوعیت نداره و به هر طریقی باید باشه و در ادامه اشاره داشتن که اشاره میکنن به پیامبر برای مبارزه غوش هایی رو متعنی کنه که یکیش یک همین باه تو هوم هستش که اشاره شد و سه تعریفی رو ارائه کردن که افرادی این رو بسی میدونن می تهمت و دیگه نظر ندانن و فرموندن که اخیران هم که آیتونده حراکی اشاره داشتن و تفسیری که داشتن ناظر به این نظر و فهمیدن که برخورد سریع اینه ترجمه کرده آیه و فهمیدن در آثار امام فحص انجام دادن برسیه هایش فورت گرفته چیزی رو ناظر به این غذا یافت نکردن که بخواهن باشه و فهمیدن اهل مدعی برای اثبات ادعای خودشون به چند تا مسئله همثال آقای بر و اینا استناد بود که یکی صوت امام هستش یا اسنادی که نازبه کتاب اشاره میکنن که با برسی که انجام دادن سند جای خدشه داره و خودش بحث داره و حتی تو بحث سندیت هم فهم بودن که این کتابها ها با که انجام دادن در از کتاب کنیم ای این وجود نداره و در ادامه اشاره داشتن که امام کتاب های فقی خودشون قبل از جریان شروع مبارزاتیشون نوشتن و در سلسل یلاتاتی که در تو با ولایت وقیه داشتن اشاراتی که اونجا بوده احادیث رو مبنای بحثشون قرار میدن جهده بیان که یکی از اون روایت علماء اومناء رسول هستش که جایگاهی رو برای فقه ها تعریف میکنن که در اونجا با اشاره به بحث سلطان جور و همکاری علماء این علماء رو چون در همکاری بودن در زومرد ملحق به این گروه میدونن و حتی اشاره داشتن که این گروه حتی آکریبر اشاره داره که اینها روحانیونی بودن که با دربار دوست بودن اشاره داشتن که اصلا مراد امام این نبوده حالا کسی که دوست بود مراد امام روحانیونی بوده که حداقل های شطیرم لازم نمی کرد شما اینکه مستنداتی هستش نظر به این فضا که مثل دستبوسی همسر شاه کسای دیگه‌ای که دها برای سلامتی میخوان نمود مسائل مختلف و در ادامه نازل اشاره داشتم به پدیده سپاه دین که تشکیل شده بود این سپاه دین در روح متشکل بود از سواکیون و افراد و گروه های در راستای این که نشون بدن روحانیت هم نسبت به دربار ارادتی دار و اتبایتی داره و آی و در ادامه استناد میکنن به شاگردان امام و اونها رو تحت عنوان مدرسه امام معرفی میکنن که متبرک مثل آیه مومن که میگن اشاره دارن به این بحث رو که حضرت استاد علوی هم فرمودن که اصلا آیه مؤمنه در این مصادیق این اینو رد می‌کنن دو قبول ندارد و در دموی علوی اشاره داشتن به بحث رابطه فقه و اخلاق و ادعایی که مثلا که فقه نمیتونه انکار اخلاقی رو بر تا به و این که تحت عنوان مدرسه امام تشکیل میده میتونه اثبات کنه اساسا هر حرفی رو از طرف حکومت اسلامی رخ میده دروغ و هیچ گزارشی ثابتی در فقه سیاسی نداریم و میتونیم همه مرزها رو در نبردیم به عبارتی و هیچ محدودیتی تو این فضا وجود نداره. و بدون ذهنی اشاره داشتن که برای ورود به بحث هیچ گونه ذهنیاتی نداشتند، بدون فرود ورود بس کرده که هم ابعاد فقه سیاسی مطلب رو مورد بررسی قرار دادن هم امتداد اجتماعی اون رو تو فضای سیاسی و فرمودن که اساساً امام برداشته بدعت به معنای خاص خودشو نداشته و دنباله های امام همین نداشتن و فرمودن به آثار امام معظم رحبری در سفاره و بحث غیبت حتی که مفصلان تو این زمینه بحث کردن اشاره کردن و به این رو مشاهده نکردن و در ادامه اینجوری اشاره داشتن رو علمی که آیا اصلا به این ها میشه اهل بدعت گفت یا نه به این علما که باید برویم این رو بررسی کنیم که اهل بدعتشان چون فرمودم مراد از اهل هم تو بسطفیقی ما کاملا شفاف هستش و با این توسعه رو میشود برای این حدیث فرض کرد یا نه با اون روشن بودن مراد از اهل بدعت آیا امثال مخالفین سیاسی ما در زنده اهل بدعتم قرار میگیرن یا نه که اینم هم جایی بحث هستی که فرمینام قراره دیم داریم نقه ها و حسابی مختلفی که هیچ کدوم از این ها شما به تشکر میکنم از سروران حضوران از حضور بزرگواران اگر تو زحمت نماشه بعد از مسئله آقای صالحی استفاده کنیم با امان ناقه و هرزون هم شده سلام نلیکم آی صالی در خدمتون هستیم؟ آی صدا آی صالی به خاطر خدا نتونستن بیان اما در میدن بخوی ای شده قصه. خدا را خدمت شما هستند. به فرق. آلله اللهم نه شیطان الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. صل الله و علیه و محمد و الله عنه و عباده من. من الان في يوم خب من ابتدا از خواهی میکنم که در جمع اصافی و بزرگوانان صحبت میکنم و در واقع چه ما داریدیم زیره به بردن هست و همچنین پیش و پیش شهادت محمد راتم علیه السلام روز حسیت از میکنم آزم خدمتتون که خوبی این که نفر دوم صحبت بکنه اینه که مخصوصاً برای بنده امسال ما چون بی سوادم که هستیم دیگه نفر اول که صحبت کرده میگیم ما حمله رو میخواستیم بگیم ایشون گفتم خب حالا نکاتی رو و ابهاماتی که البته برای بنده هست من منعش میکنم ولی لما در مقام نقل نیست نکته یکی قبل از اینکه من بارد بست بشم باید خیلی به اصطلاح تشکر بکنم بابت این میشه و این موضوع مقاله که حالا جز مردود مقالاتی است که من وقتی میخونم و میبینم که دغدغه ای به جایی داشته و موضوع خیلی خوبی رو به اصطلاح نویسنده بهش پرداخته و همینجا از آن بکنم که بنده در حد نقده این مقاله نیستم کاشت یک از دوستانی که دو حوضه تاریخ و کار کردن استفاده می من این زودتا می دونستم حتما با اجایمش پیشنهاد میدادم و حالا دیر خودم مقاله رو خوندن و باید متوجه بستشون اما حالا دیگه حالا از بابه این که دیگه نخواسته به اسم ما افتاد من نکاتی رو از نکار خدمت و البته پیشارش بزخاری میکنه و کس با اجازه همه فارغ از محاسنی که این مقاله داشت و دردقه یه به که نویسندگان این مقاله داشتن ببینید تو بحث حفظ نظام که وارد اصل بحث شدید خوب انتظار میرفت که مسئله حفظ نظام رو خیلی واضحتر و بهتر توضیح بدید یعنی مثلا وقتی شما مسئله حفظ نظام رو دارید توضیح میدید مراجعه کردید یک به یه سری مباحث و منابع دست دوم، باید مسئله حفظ نظام توی اندیشه تمام افاقه هایشی است. مثلا فرق حتی مرحوم آیتالاخویی ای رو که سعی میکنن یه جوری مصادره بکنه در حوزه منحس ولایت فقیدیه و به نوع ایشون رو منکره مثلا ولایت فقید معرفی بکنن مسئله حفظ نظام رو خیلی واضح و خیلی عجیب مورد بحث قرار داده و وقتی بحث حفظ نظام رو داره مطرح میکنه اه یعنی اه یه معنایی رو داره ازش تفسیر میکنه که کمتر فوقهای ما بحث حفظ نظام و مسئله نظام رو بهش پرداختن یا بقیه فوقهای ما انتظار بود حتی اگر که مسئله حفظ نظام مسئله روشن بشه تو بعدش ما بدونیم که وقتی تعارض میشه بین حفظ نظام و سایر مسائل چرا میگن حفظ نظام مقدم هست و آیا چرا مرحوم امام داره میاد میگه حفظ نظام از اوجبر واجبات است من مقاله رو که می‌خونم شما صرفا یه گزارشی از مرحوم امام رو آوردی که مرحوم امام میاد میگه حفظ نظام از اوجبر واجبات است خب کدوم نظام و چرا این نظام رو داره میاد میگه از اوجبر واجبات است و آیا مخصوص امام هست که این هم نیست الان می‌بریم که قاعده حفظ نظام جز اون قواعدی که بر تمام قواعد فقهی همه فقهای ما هم قبول برم بر تمام قواعد فقهی حاکم این مقدم هست کاش این بیشتر بهش پرداخت می تا بعدش که شما روایات روی اون ادعایی رو که جناب کردی برداره مطرح میکنه رو خیلی واضح مورد بحث قرار نکته بعدی بحث روایت هست که روایت رو که البته به لحاظه سندی مورد بحث قرار دید خیلی کار خوبی هم کردید دنی ادعایی رو مطرح می‌کنید می‌فرمایید که تا قرن دهم برداشت یکسان بوده به خاطر اینکه چون فقها وارد بحثش نشدن پس ما نتیجه می‌گیریم که برداشت همه فقها یکسان بوده خیلی خوب برداشت فقهای یکسان بودن برداشت چی بوده اگر شما می‌فرمایید که در باب این روایت برداشت فقهای یکسان هست فارغ از این یه احتمال دیگه هم هست اینکه فقهای موارد به این جور مباحث نشدن، چون اساساً مباحث فقهیشون این مسئله نبوده. یعنی اصلا این مسئلهشون نبوده، بحث اخلاقیات رو بیان توی حوزه فقه و در موردش بحث بکنه. ما میتونیم از این زاویه نگاه کنیم. چرا بیام بگیم که اتفاق نظر داشتن؟ نکته بعدی بحث بوختون رو که یا به اصطلاح تهمت و این موارد رو بحث میشه. ببینیم ما وقتی روایات رو دارید نگاه میکنیم موردی به روایت میشه روایات اینا رو همه رو اون بختان اتهام تائیر تحقیر تحقیر مخصوصا که به عنوان مؤمن هست یا بحث عنوان زنین رو نگاه میکنید روایات رو یکجا دارن ذکر میکنن یعنی گویا اینکه مثلا وقتی بحث اتهام یا تهمت رو داره مطرح میکنه تهمت صرفا بی معنا نیست که شما یه چیزی رو که یقین داری که طرف اون رو نداره و بهش داری نسبت میدی گویا یه چیز امر مشکوکه امر مشکوکه. مثلا فرض کنید. یه سو ازن. آه. مسئله یه ازن. اینها همه روایات رو میبینی یه جا داره مطرح میکنه. یعنی مثلا فرض کنید. میاد میگه شما سوء ازن به مؤمن داشته باشید ناپسند. سو ازن مثلا به خدای متعال داشته باشید ناپسند. خب خب من سوء ازن به آدم ناباب داشته باشم چی؟ سوء ازن به آدم فاسق داشته باشم چی؟ این هم زیل همین اتحام و تهمت قرار میگیر یعنی وقتی میاد میگه باهت گاهی اوقات بهتون میگه من یه آدم آدم فاسقی من به این سوءزن دارم و از باب اینکه سوءزن دارم همون مسئله سوءزن رو دارم بیان میکنم کنم بی نیست که چیزی رو او نداره و حالا من دارم بهش نسبت میدم یقین دارم نداره بهش نسبت میدم یه آدم آدم مشکوکیه آدم فاسقیه و در نتیجه چون آدم فاسقیه من اون سوءزن خودم رو نسبت به ابراز میکنم چون خود ابراز کردن سوءزن برای مؤمن حرامه. اما برای یه آدم فاسد ابراز بکنم اینو مساق بهتاله خب حالا چه اشکالی داره که من این سوءظن خودم رو بیان میکنم اونم کجا نسبت به یه آدم فاسد و در مسئله مساله حفظ نزاک این اصلا با دین اخلاقی اونجا بحث بکنیم سازگاره سازگار نیست مثلا اینا بخشی از اخلاق نکته بعدی توی بحث مسئله مذهب حضرت امام ببینید من حضرت امام زیل یعنی ناظر با علمای سو داره بحث میکنم و وقتی که شما مسئله علمای سو رو ب... مطرح میکنید این جناب آکیدی وری ادعای رو مطرح میکنه میگه که احتمالاً البته مطمئناً داره بیان میکنه میگه این روایت بوده و مرحوم امام از این روایت داره این مسئله رو مطرح میکنه و اون که ما در باب روایات فقهی ما یه عنوانی داریم تحت عنوان علمای سو اتفاقاً یه بخشی از فرمایش حضرت امام دقیقاً ترجمه تفسیر منسوب به امام اسکری علیه در باب علمای سو هست خب این رو هم بحث می‌کنیم این جناب فکر میکنه فقط ما یه روایت داریم یا حالا حداقل اینجوری الغام میکنه که البته اینم که دارن بیان میکنن اون مساق اتهامه یعنی به آدمی که داره حق بازی میکنه داره فریبکاری میکنه و داره عبارات رو تحریف میکنه خودش داره ادعا میکنه که باید اخلاقی باشیم اتهام نزنیم اما او بدترین تفسیر رو از مطلب امام داره بیان میکنه و اسمش نمیذاره غیر اخلاقی این یعنی خودت مبتلایی تو خود داری میگه اتهام نزن اما بدترین تفسیر رو و کم احتمالترین تفسیر رو داری نسبت میدی به امام اسمش هم نمیذاری غیر اخلاقی اسم خودتم گذاشتی اخلاقی دارم اخلاقی بحث میکنم ببینید اونجا وقصه علمای سو رو که داریم رو نگاه میکنیم مثلا یه جا داره بیان میکنه که اینا بدترین آدم های روی زمین هستن علمای سو علمای سو یه تعبیری داره از امام حسین علیه السلام میاد میگه که اینا ضررشون از یزید نسبت به امام حسین علیه السلام آسیبشون بیشتره یا در باب علمای سو میاد میگه اینا کسانی هستند که باعث میشن دین آسیب ببینه همون ترجمان عبارته امام رضوان الله علیه رو تو این وروایت دار میبینیم یعنی تو تفسیر منسوب امیرالمؤمنین میبینیم. امام عسکری علیه السلام میبینید مثلا اصلا بیان ببینیم که ها تو که داری ادعا میکنی تو راه روایت دیگه داری روایات خیلی مکمتری هم داری در باب علمای سو حضرت امام هم داره نظر به اینا خوب نسبت به علمای سو شما چه نسبت به این روایات چه تفسیری دارید چه برداشتی دارید چیکارشون بکنیم علمایی که اتفاقا هم داره بیان میکنه رفته سراغ حاکم جائ میاد یا دسته روایاتی که نسبت به باب سلطان هست میاد میگه که بدترین ادمها کسانی هستند که میرن باب سلطان یعنی به نوعی رفتا آمده با سلطان دارن به نوعی دارن تاییدش میکنن این هم روایات داریم فقط هم این روایات نیست در مساله به صلاح اتصهام نکته دیگه در بحث مباحث حضرت علی ببینید بالاخره این روایت رو شما چجور جوری معنا می‌کنید بگیم که خب حالا مثلا فرض کنیم مرحوم امام این مطلب رو اینجا داشته و فلا و حالا این تفسیر رو ما ازش نمیپذیریم از جناب آقای هم بعدا انکارش کرد بالاخره این روایت چجوری میخواد می‌خواد معنا بشه بیان که اندیشه ای امام این روایت می‌خواد چه جوری معنا بشه بالاخره بعد این رو ما معنا بکنیم دیگه این روایت رو تفسیرش مشخص دیگه. نکته دیگه در بحث به صلاح هایی که این در جناب کدی برمیاره. درسته که مسئله رو برده توی بحث انگاره اتحان و بحث اخلاق و اینجور مواره. ببینید چند تا گزاره رو به صلاح مفروض داره تلقی میکنه و توی مباحث شما بهش اشاره نمیشه. چه گزاره رو داره مطلب میکنه؟ مسئله مخالف سیاسی. و تو مسئله مخالف سیاسی پایین ترین حد مخالف سیاسی رو داره در نظر میگیره و براش مظلوم نمایی میکنه مثلا فرض کنید کسی که کوچکترین انتقادی به نظام سیاسی داشته باشه این جزء مخالفین سیاسی و این جز کسانی هست که مثلا مصداق این روایت قرار میگیره آیا واقعا اینطوره اصلا مخالف سیاسی یعنی چی عنوان مخالف توی روایات ما عنوان مخالف سیاسی مصادیقش توی روایات ما توی به سلام مباحث سیاسی این رو هم باز دوباره بهش پرداخته نکرده یعنی اون گویا شما مفروض گرفتی بله مخالف سیاسی که داره بیان میکنه یعنی اون پایین ترین حدش مخصوصا هم داره برای خودش مظلوم نمایی میکنه میاد میگه مثلا اون کوچکترین حدش که باش برخورد میشه که من دیگه توجیه من هست که من فرار کردم اومدم زیل مثلا حتی جر قرار کردم خلاصه یک گزارهایی رو داره مفروض تلقی میکنه بحث انکار ولایت فقیه تا جایی که سعی می‌کنه میخواد این رو توی بیانات خودش بیان بکنه مثلا فرض بکنید جناب سید محمد روحانی رو که داره مطرح میکنه داره القا میکنه که سید محمد روحانی طرفدار شاه بوده سید محمد روحانی منکر ولایت فقیه بوده سید محمد روحانی اینجور بوده سید محمد روحانی طرفدار شاه بود سید محمد روحانی منکر ولایت فقیه بود یا در بحث صدر چه محمد چه شه شهید رضوان الله علیهما ونجا داره اونها رو جزء ساکتین بیان میکنه یعنی گویا که اینا هستن مسئله ولایت فقیه رو نسبت به مسئله حکومت و اینا ساکتن اینا ساکت بودن و وقتی شما بهش پرداخته نمیکنی یعنی اون مفروزه رو پذیرفتی که گزاراهای باطل توی کلام جناب قدیور فراوان هست یعنی این عبارت رو داره بیان میکنه اما زیل این عبارت مسئله که داره مطرح میکنه سراسر گزاراهای باطل رو هم داره الغا میکنه و توی مباحث شما بهش پرداخته نمیشه نکشه بعدی در بحث مسئله بسلال انگاره بسلال بحتان ببینید بحث اخلاق رو که داره مطرح میکنه و میاد میگه که مثلا فرض کنید شما اگر به اخلاق پایبند باشی، اون وقت سیاست رو میخواید سیاست ورزی بکنید مصادره نمیکنی اخلاق رو آدمی که متعبد به اخلاق هست سیاست رو به اصطلاح بر به اخلاق رو به نفع سی مصادره ببین اصلا اخلاقی رو که ایشون داره تعریف میکنه چیه در بحث نقد نقد بر به اصطلاح مرحوم امام اخلاقی رو که داره مطرح میکنه اخلاق دینیه طرفداری از اخلاقی که میکنه اخلاق سکلاری اساسا ایشون مسئله اخلاقش عرفه یعنی گزارهای رو اخلاقی میدونه که عرف اونا رو پذیرفته باشه خودت بر اساس اون که خودت قبول نداری داری نقد میکنی داری انگاری رو نقد میکنی که دقیقه مقابل خودت قرار گرفته به بارات دیگه من اینجور بیان میکنن ببینید وقتی آقا کدیور داره اخلاق رو بیان میکنه مثلا میدید در اون کتاب اسلام و حقوق بشرش اونجا میاد گزاره ها رو که مطرح میکنه میادید میگه هر مسئله ای رو که عرض به پذیره میشه این گزاره اخلاقی و اتفاقا مثلا فرض کنید مسئله رو مطرح میکنه. مسئله ارسزن رو مطرح میکنه میاد میگه اینا چون عرف اون زمان باش با برخوردی نداشته گزارهای دینی و گزارهای های درستی هستن اما عرف الان چون اینا رو نمیپسنده بس گزاره ناپسندی هستن و بعدش اینجوری نتیجه میگیره میگه اگر شما میخواید دین رو تفسیر بکنی میخوای اخلاق رو تفسیر بکنی باید دونی عرف الان چجوری داره این رو میپسنده چون این مسئله مفروضه ی جناب کدیور هست واظن تو مباحث اخلاقی دین اخلاقی اخلاق شما بازم بهش پرداخته نمیشه که یعنی این از این زاویه شما ایشون رو گویا مثلا فرض کنید نسبت به ایشون ساکت هستید گویا مثلا فرض بکنید پذیرفتید حداقلش لازمی که اشاره بکنید بله ما در این حوزهم نقد داریم اما من وقتم نمیرسه که بیام همه این موارد رو بپردازم یعنی گزارهای باطل کدیوره من تو گزارهای باطلی که بهش معتقده میخوام این رو مورد توجه قرار بدم که حالا بعدش وارد بحثش نکشه بعدی بحث مخالفین سیاسی هست ببینید مرحوم امام حالا فارق از معنای مخالف سیاسی مرحوم امام موارد متعددی داره که میاد میگید نقد بکن. او داره الگاه میکنه که امام مثلا فرسوی نقد پذیر نیست اگه کسی نقد بکنه با حفظ نظام مخالفه. هست مرحوم امام گزاره ها و مطالب متعددی داره میاد میگید نقد بکنید بیاد اشکال بگید و خب اینها هم از مواردی هست که نقض جناب کدیبر هست. تو داره مظلومنمایی می‌کنه. اینها هم واسه دوباره توی مباحث شما بهش پرداخته نشود. من دیگه فهم کنم حدم بس باشه. حالا اگر ای بود باز دوباره من در ضمن مباحث بهش می‌پردازم. اسخاهم می‌کنم از هستی که اختیار استفاده کرد من یه صوتی آقای سالیم من نشوبش نمی‌می‌م. بحث دوباره. نیش لذت‌دو تشکر می‌کنم از مصادره عزیز و از جناب علی طیق قاسمی، الحمدلله اشاره به مهاجرت من و به مندی سرگرمی داشتن من سه تا کمیاتی را از از بس بس این درprobability قابل اشاره کردن نیست بعضی بود که اش کولات که من فکر می‌کنم دید عدم تعریف شما از مخالف سیاسی از منظر کدیور هستش که این در مقاله مذبور ها متن به صورت سعی مشخص شده که مراد از مخالف سیاسی چی چون الغای آی کدیور این هستش که هر نوع مخالفتی چه جزئی به منظور مخالفت هستش تا اینو مخاطب که امام برای نمیتونم دفتاده که اشاراتی داشتن به عکس اینقدر حتی بعدی بحث تعریفی که از اخلاق بود که گفتن که جا داره تعریفی که آقای کذیبر از اخلاق دارن اشاره میشد که ایشون اخلاقی که دارن یک تعریف من در منظر انظام امام هکتب امام خیلی فرق داره با اون پایبندی که خودشون فضای اخلاق دارن که مورادشو عرف میگیرن و بحث مسازی و بحتان که در که جا داشته به این هم اشاره بشه که آیا هر بختانی بیان هر, هر فسقی بختان هستش یا نه تشکل میکنم از استاد عزیزم از حضر عزیزم آقای صالی منش اگر ازامان دانی انجفه. آقای صالی منش سلامون علیکم صدای بندرداری استاد عزیز این ترپونش من خوشن نهارا دیگه با بگیشم که در صوتی تماس بگیم تلفونی که دیگه یا پای تا ایشون دوباره وحث به شما جلیس استفاده کنیم حالا شاید جوابی رو که جواب بده به یه جواب دوتایی باشه سلام عزب. شما خوب نمیشنیم ما خدمت شما هستیم خودتون روشن اگر بفرمایید اگر نه باشه السلام تشکر از نه به دلیل تو بابا خیلی ممنونی آقای ساحلی صالحی من منش استفاده کردیم آقا جان. تلفن رو بخواد قد نکنید اگر نکته تشکر میکنم از استاد سرور از من آقای ساله ouais. <تصح grill anda> زم... منش عزیز که در چهار عنوان به طور کلی به ووارشونا اشاره داشتن یک بحث این که قبل از اینکه از سی نظام تا سال 70 اولین خودم با همین فضا دایش شاده که دایات داشتم از بحث رد صلاحیت فرمی از بحث بحث در بله چون که بعد اینکه رد صلاحیت شد از اون باب ایشون بلاشون شما احتیاط یه بحثم بحث رابطه مستعد و حفظ نظام که با از وجب واجباتش این بیشتر پرداخته بشه. و و باعثی که ناظر به که به ارائه برادر از اون حاجی مرادی داشتن که این روشنش و نشد تدین امام حق فرمودند یا نه حتی با فرض حالا حذف یادانه بعد از افتخاراتی هم که مسئله وقتی اشاره داشتن نظام ما داره اون با رابطه حوزه سیاست و اخلاق هست است که اخلاقمون خارج از فقه امتناع باشه در خدمتتون هستیم استاد عزیز بی‌رفتی علمدار دی مرادی عزیز اگر به نفت های مرتشه است نکاتی استفاده کنیم این شانده و بعد از اونم دوباره ناخدهی اگه مرتبی و از از سالی داشتن استفادهش میشه آیه مورد شما بفهم. اگر دست ماسوخ بیانتی دوست هم نکاتی دارید به فرمایید و الله بعد منو مختصر عرض کنم خدمتتون اول برادر عزیز روانی ساله منش رو جواب بدیم خدمتشون امام علاوه برای این که کردن. در گزاره هایی که خود آقای کدیبر هم ذکر کردن خیلی خیلی به اخلاق پایبند بودن حتی درسشون رو بعد از توهین به آیه صدر تعطیل می‌کنن و می‌فرمائند که علما امید اسلام هستند حالا چه کسی منو تایید بکنه و چه کسی اطرافیانش البته اله خدا, خدا خدمت شما رسان نداریم که خدای روحانی هم به مخالفت با امام برخواسته باشند علاوه بر اینکه که کردن خود حضرت امام خیلی خیلی هم رو مسئله اخلاق حساس بودن. دومین مطلب بر بحث آم بودن قاعده حفظ نظام هست. به جهت اینکه خیلی آم بود قاعده حفظ نظام و ما هم مقصود اصلیمون پرداختن به صحبت های اصلی آقای کدیور رفت و برگشت هایی که ایشون داشتن به قولی که از این کسرت نوشتا و بیهود نویسی های آقای یکی از موزلهای اصلیه که هر کس رو اذیت میکنه که میخواد به نقده آی کدیبر اقدام کنه واقعا تو هفتا مقاله و دوتا کتاب صفحه ای یه موضوعی که ما میتونیم تو نهایتا ده صفحه میشه خلاصه بشه آی کدیبر هر جا یک بحثی رو اضافه میکنن یه جا کم میکنن یه جا دیگه میبینید اون مرپس رو رد میکنن اینا خیلی داشتیم و بعد در ارتباط حفظ نظام ما حفظ نظام از منظر حضرت امام متاسفانه تو جریانات سیاسی هر کس به نفع خودش این قاعده حفظ نظام از حضرت امام رو داره تعبیر میکنه و به نظر میرسه که خودشی یه بحث می طلبید بحث حفظ نظام کما اینکه که ما هم کار کردیم فعلا در دست انتشار روینا هست ولی قاعده حفظ نظام مضافون علیه حفظ نظام خیلی مهمه اینکه حفظ نظام اسلام یا حفظ نظام سیاسی که به نظر حقیق تا ما روی این مبحث داشتیم کار میکردیم مقصود ما نبود که حفظ نظام سیاسی یا حفظ نظام اسلام که هر کدومش هم که از نظر حضرت امام میخواستیم بر بگذینیم به این مبحث به نظر بنده تفاوتی ایجاد نمیکرد آخرین مطلبم هم عرض کنم خدمتتون اشاره داشتیم که امام تو همون کتاب حکومت اسلامی تو همون رساله گفتاری 12 جلسه ایشون یه راه حلی ارائه میدن برای مقابله با اهل بدعت و اون هم روایت وجوب اظهار علم هست که یکی از اصلی ترین ادله قائلین به نظر ما متفوت کردن از روایت باه توهم این هست قاعدتا ما بتونیم اینطوری استیاد بشه از سخنان حضرت امام هرچند عرض شد به صورت مشخص امام به این موضوع نپرداختن و نظری ندادن حالا برای ادامه بحث، از هاش آقای علاوی خواهش شفاقه میکنم بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ممنونیم جناب آقای دکتر قاسمی جناب استاد سالحی منش که تقبل زحمت کردن و نکات بسیار مفیدی را در تشریع ازهان عمومی برای فهم مطلب بیان کردن من نکاتی را که دو استاد بزرگ بار ناقت مطرح کردن دو دست تقسیم میکنم و دو دسته رو پاسخ میدنم یکی نکات نازل به نوشته های ما یکی نکات نازل به ننوشته های این تحقیق ننوشته های این تحقیق بسیار زیاده چیزهایی که ما میتونستیم بنویسیم پاسخهایی که ما داشتیم های بسیار زیاد و متنوی میشد به کار کرد بنا نداشتیم و ممکن نبود هم که در یک تحقیق در واقعیت در قالب مثلا فرض بکنید هفت هزار کلمه چیزی بیشتر از این گفته بشه و در ادبیات ما هم در ادبیات فقهی ما هم بین گفتن شفاف گفتن و موجز گفتن در روایات ما هم آمده که این از خصوصیات کلمات انبیاست که موجز و چکیده و بین بگویند سعیمون هم این بود که یک ادعای خاص رو مطرح بکنیم نقدمون هم یک نقد دورون گفتمان بود یعنی پیش فرضهای آقای کدیور رو خیلیش که مورد نقد بود ما هیچ کدومش رو به اونها نپرداختیم چون در مقام نقدشون هم نبودیم و اون حق نقدهایی که جناب آقای دکتر قاسمی فرمودن کاملا بجاست یعنی اساسا تلونهای فکریشون عویسه های فهمی ایشون در عرصه فقاهت که عمق فرق پژوهی ایشون رو نشون میده ما بنا نداشتیم بهش بپردازیم متن هایی که ایشون گفتن بالغه بر اون هفت مقاله اون دو کتابی که اشاره کردن چیزی بالغه بر هفت 700 در واقع ما چیزی حولش هزار کلمه این مقاله رو نوشتیم میشون تقریبا هفتاد هزار کلمه مقاله و کار علمی کرده خیلی ربط و بی ربط اصاساً. یعنی اصلا چیزی برای گفتن نداره خیلی شما تو تحقیق خودمون اون ورز کردیم لذان نا نقدهای نانوشته ما برخیش توی اون اصل کتابی که و اون اصل تحقیق وجود داره که ما پاسخ دادیم خصوصا اون مسئله یه حفظ نظام که حالا بعد اشاره میکنم بشه تو اصل تحقیق وجود داره ولی تو مقاله ما نگیدیم چون از همونو یک حوزه فکر دیگه ای داشتیم براش پاسخهای دیگری داشتیم اون سر جای خودش پاسخ بدیم اینجا فقط به نامون اون این بود که در واقع با پیشفرض در نظر گرفتن اینکه یک ادعای فقهی دارید میگفت که ما باز عرض کردم اساساً در بادیه امر ما این دارای که دعای فقهی دقیق نمیدونستیم بلکه بیشتره که اتهام سیاسی میدونستیم همین نکاتی که جنابای وای صالحی منش گفتن در مورد های کدیور هم جاریه یعنی ما اینا رو هم اساساً این کار نمیکنیم این یک نکته بخش عمده این نکاتی که در متن ما نیامده و جناب آقای قاسمی فرمودن پیشنادات خوبیه که موضوع تحقیق قرار بگیره و نویسندگان دیگر هم بر این موضوع کار بکنن خصوصا این این مستند دیده شد و در واقع پاسخت دادن بهش در فضای علمی به نظر ضروری میرسید حتی در فضای بین الملل یه وقتی من با برخی از دوستانمون در کانادا صحبت میکردم طلبه های ایرانی همین دانشگاه که شگرد ما هستن صحبت میکردم اینها ها گفتن خیلی این مثلا مستند دیده شده و مثلا من که صحبت میکردم میگفتن آقا یه کار بین المللی مقاله بین وقتی بین المللی این رو بحث بکنید که آیا بوده یا نبود یه پاسخه نمایه شده معتبری برای این موضوع بذارید لذا اون مباعثه نگفته شدهش خیلی زیاد خیلی هم بجاست. این نکته اول نکته بعد نکته حفظ نظام هست بحث حفظ نظام رو ما یک ما منقوش نکردیم ادعای آقای کدیور رو با اینکه قابلیت نغز داشت تو پیش فرزه های ما بود بحث های داریم در مورد تخصیص دلیل ما ممکن بود اگر هفت نظام ایشون رو بخوایم. در واقعیت مورد نقد قرار بودیم بعدشون بیاد بگه که شما ایراده بنایی کردید ایراد منو پاسخ ندادید ایراد خودتون رو پاسخ دادید یعنی یه چیزی از حفظ نظام گفتید من یه چیز ماده گیری نظر داشتم لذا ما فارغ از اینکه به اصل ادعای در حوزه نظام معتقد نبودیم ولی وارد نشدیم چرا چون ممکن بود اگر ما افسنظامی که ایشون مطرح میکنه را میخویم نگاهمون رو تغییر بهش بدیم. ببین آقا شما حفص نظام نظام یه سری دیگه ای گفتی و بعد رفتی پاسخی دادی. لذا ما همون حفص نظامی که ایشون گفته با چه نگاهی که آقا آیا یا حفص نظامی که از او از اوجب واجباته یا اوجب واجباته با این دو تا قرائت متفاوت و اینکه اصلا این گزاره تو بیانات امام هست یا نه که اون سر بحثش خودش ما بحث می‌کنم. ما گفتیم آقا شما درست نیکی. امام قائل بود برای حفظ نظام سیاسی میشود بهتان زد شما دارید میگید بهتان زدن حفظ نظام اجتماعی را از بین میبره و برای نظام سیاسیه و در واقعیت این هم جزی از ادعای بود که ما اینو پیش فرض قرار دادیم پاسخ ندادیم چرا چون خیلی اطلس اصلا یه بحث دیگری میشد تو حفظ نظام ایشون میگه حفظ نظام اجتماعی مقدم بر حفظ نظام سیاسی و امام اعتقاد داشته حفظ نظام برای حفظ نظام سیاسی میشوه نظام اجتماعی را نظامش شده مهتان زدن تو نظام اجتماعی یه آسیبه فارغ از اینکه وارد فرا اخلاق بشیم بگیم آقا آیا این رفتاری رفتاری غیر اخلاقی هست یا نیست ولی ایشون ادعاش این بود ما این دارم دست نزدیم و گذاشتیم یک ادعای علمی که میشه تو مرزهای فتاملای بحث ما بحث یه نکته بسیار به جایی رو مطرح کردن ما این رو مخص کرده بودیم ولی باز زیق مقاله اجازه نمیداد اون برداشته تا قرن ده بود ما اینجا فقط گفتیم که تا قرن ده هیچ گزاره نازل به بحث ما وجود نداره اینکه آیا بدعت یعنی باه هتوهم تفسیری اینکه که شود با باه تو هم به کسی به مثلا فرض کنید به مخالف دین مثلا فرض کنید لطمه زد یا دروغ بست یا فلان امثال هم یا نمی شود. ما فقط می بگیم که در علمای سلف خب مستحضرید. ارزش فتاویی که ما برای بزرگان سلف صالهمون داریم به جهت فقی برخی از اینها رو ما در واقعیت اصول متلقات می کنیم. با برخی از فتاوی بزرگانمون بزرگان خصوصا بزرگ معاصرین در واقع در عصر اسمت با برخی از فتاوای اینها ما عین روایت برخورد میکنیم چون میگه میکنی آقا اینا در مزان بودن در دسترسشون بوده شدین اینا داشتن و برخس و برخس کتبوار رواییه ایشون رو با, با حالا اون محدوده اصول و متلقات رو نمیخوام وارد بشم اما برخورد میکنیم ولی ما فقط میخواستیم بگیم که تا قرن 10 گذاره فقهی وجود نداره که بعد کسی به ما نگه آقا شما نرفتید ببینید نگاه در واقعیت علمای سلف را ما فقط در همین حد می بگیم بدونه و باز این هم یک فته عملی در این کار باز گذاشته بود برای اینکه ببینیم که در مورد این موضوع چه نگاهی وجود داشته گزارش های تاریخی وجود داره گزارش های فقهی وجود داره که اون رو ببینیم که ما اصلاً به اونجا نپردافتیم و سکوت رو فعلاً ما مفروض در واقعت گرفتیم در مورد علمای سو بله من یه جایی در مورد بحث مخالفان سیاسی یه نکته رو عرض کردم یک دامنه ای هست که واقعا مخالفان سیاسی کیه مخالفان سیاسی مثلا فرض کنید فارغ از اینکه اینه درسته یا غلطه مثلا آقای صدر ساکته یا نیست فارغ از اینکه آقای روحانی زرد نظریه ولایت فقیه یا نیست تلاش های جدی آقای کدیور میکنه که با این گزارش یا در خلال بحث خودش به عنوان هدف دومش بگه که آقای نام بله این آقا صفحه انقلاب دورن و مثلا مخالف امامن و اتفاقا چون این حرف واقعا زایش نداره یعنی ارزش علمی نداره خودش با حرفای خودش خیلی رو عدم شد نقدش کرد که آقا خودشون میگه که آقا امام مثلا اونجوری برخورد کرد جالبه من برای شما این خاطره نقل بکنم اینجا آقازادهی ای آقا، مرحوم آی هائری شیرازی همین آقازاده، معروفشون که خلاصه الان حاشیه های خیلی جدی هم داره وقتی من کفایه می گفتم مدرسه امام علی ابن ابی طالب تهرانیشون اونجا درس میگفت ایشون نقل میکرد خاطره از پدرش همین مطلبی که آقای مرادی عرض کرد فرمودن فرمودن که وقتی آمدن ممجد. به امام گفتن که چنین توهینی به آقای صدر شده می گفت اولین بار و آخرین بار می گفت امام انقدر از این موضوع تنش دیده بودند آسیب دیده بودند که می گفت مرحوم پدرم می گفت امام در رکات نمازشون اشتباه کردن و می گفت وقتی نماز امام تموم شد امام اصلا با یه حالی دیدیم که تا حالا ندیده بودیم یه حالی دیدیم که امام تا حالا ندیده بودیم با اون وضعیت خب این آدمی که اینقدر دقدره اخلاقی داره متنا تنظیم میکنن خودش میکنه، اینقدر حساسه. واقعاً نمیشه واقعاً خلاصه چیزی بیشتر تو کانسپت خودت ادعای تو رو همه رو پیش فرض میگیریم واقعاً نمیشه چیزی بهش اما تفسیر جای گذاره تو باه توهم تو هم بله باه تو هم یکی این که آقا اهل بدعت رو میشه بهتان بهشون بست یک ایده یکی اینه که باه توهم تو هم از باب بوهتن لذی کفر. یعنی عمق استدلال فکری شما باعث تحیر جریان بشه. یه قراعتی هم اخیران الان مطرح کردن بعضی از بزرگان در حوزه که آقا روایتش استدلالش هم مسامحه پذیر نباشه ببینید ما روایت اولی رو که باه توهم به معنای اینه که برای حفظ نظام میشه به کسی دروغ بست و اون کس علمای اسلام باشن ما این گزاره تا همین حد اینجا نقد کرد که یک اولا مخالف سیاسی نیستند به این معنا چون اصلا دامنه‌ی مخالفان سیاسی اگر باشه هر کسی به نظام سیاسی نقد بکنه ما یا توهین تلقی بکنیم که نمیشه اتفاقا خطر این که در یه فکر سیاسی ما خود استاد رشادی کتابی دارن مفصل به این مفهوم مدارا و تساهل پرداختن و این دلل رو بررسی کردن تساهل و مدارا که به چه معناسون چیزی که ما مدارا اسمش اگه قطعا یک ای از مداره اساساً در فکر سیاسی امام وجود داره کسی که تأسیس نظام سیاسی می‌کنه خودش به قول استاد می‌فرماید آقا مخالف سیاسی بیان حرف بزنن خودش قطعا این میزان رو داره در فکر خودش ما فقط در روایت باهتوم می‌خواستیم بگیم این ادعا این خط ادعایی که باهتوم یعنی بهتان زدن و دروغ بستن به مخالفان سیاسی و اون مخالفان سیاسی هم این مصادیقی که شما گفتید ما این قبول نداریم ما طرفدار ایده اول هستیم که باه تو هم به معنای بهتل ازی کفره اما خود اون یک نظام دامده داریست همین ایده ای که آقا مثلا استدلال شما که استدلال قوی می باشه جای مناقشه نباشه استدلال شما استدلالی باشه که خدمت شما عرض بکنم قدرت داشته باشه با رودرواسی نباشه و اینها ها تو همین بهتل ازی کفره استدلال شما شما نمیخوای در واقعیت دیزی دو نفره ای با کسی بخوری یا مثلا با کسی مداره مثلا این شکلی بکنی که بگی حالا من هیچی نگم از کنارتو رد بشم نه استدود سریح میگی و اینم جزو باز نگفته های ماست مسادق علمای سوی که ایشون میگن ایده آیه دکتر قاسم بسیار ایده به جای است آقای کدیور نسبت با آقای روحانی در اشتباه می کنه حرف آقای روحانی در فقه هست آقای روحانی در واقعیت صاحب فکر افکارش هم افکار خوبی است ادعای اینکه به دربار نزدیکه ادعای دروغی است مثل ادعای نزدیکی آقای خویی به دربار و داستانه قضایی فرستادن اون انگشتره مثلا فرض کنید برای شاه که هیچ در تاریخ فکر ما ساز نشه بازم اینم از برداشته بوده که وقتی طرف مثلا 70000 کلمه میخواد حرف بزنه توش هی خلاصه هاشیه میره چیزی که دلش میخواد بسازه اینا هم ساخته و الان تو فرآیند در واقع سوال از ما بود سوال از از رو را پاسخ میدادیم که اگر دوستان من توجه می کردند شاید این نکته هم بوجود نمی آمد و یه نکته ای رعای سال منش فرمودن فرمودن که ای کاش خلاصه این مثلا مسلمانان سال نهادو هفت معلوم اینجکی نشستیم زیرا یک هست و ای کاش مثلا این زودتر نبود می شد این را بلکه اینکه از آسیب های ماست که ما خلاصه فعال شد جاهای بعضی جا خونه تو آرشیفرسیسی هم عمل نمیکنیم اما باید بپذیریم که اولا پاسخهایی به مستنده ایشون داده شده بود پاسخهایی که جور تو سطح جورنالیستی برزی زیاده داده بودن تو فکر سیاسی برخی ها داده بودن ما میخواستیم پاسخ فقهی بدیم البته این پاسخ فقهی دادن مستحضر در فقاهت تومعنین وزانت تحقیق هم مهمه و البته مستحضر کار آقای تحقیق مقاله. مقاله ایشون ساله 1399 بگم آنم نمایه شد یا چار... چار ما 1199 فرستادیم 400 نمایه شد و چاب شد فکر میکنه و از اون بر اصل تحقیق هم چیزی و لوشه مثلا یک سال بعد از اون کار شروع شد و مثلا لذا بیانشون کاملا به جاست ای ما تو جبهه انقلاب در واقعیت جای استدلال هام بود از طرفی هم بگم ما خیلی هم نمیخواستیم که مدعی رو بپرورونیم اگه تو اون آستانه خیلی حساسیت شد نشون میدادیم همون وقت شاید واقعی شای شد خودشون رو فکر کردن واقعا عددیست با درستی که گفتم واقعا حرفهایشون سراسر عویسه و پایان باز و غیر قابل فهمه برای فقیه نگه شما گذارم ما تلاش کردیم برای صورتبندی بحثیشون برای اینکه اساساً از حالا باز آهای قاسمی دقیقت فقهی کردن متوجه شدن. خیلی از جهاییشون رو ما اصلا گفتیم باشه. تو درست میگی تا تازه یه صورت بندی فقهی بشه ازش درست کرد. ولی واقعا این, این یه مسئله فقهی نبودیه دایه سیاسی بود. شاید هم به قول آیس آیلی منشه دایه سیاسی بود که بعد از هفته دو هفته و بعد از چپ کردن سیاسیشون شروع شد. ولی ما خیلی از این با حذف بحث ما اینجا مثل بحث استصحاب در واقع تعلیق نقص خود که شاید خلاص حلال محمدون معبدون اصلا جایی برای استصحاب تعلیقی نگذاره دیگه ولی ما میپرداختیم تا پاسخ کسایی را که پیش فرزای ذهنی نسبت به این موضوع دارن و ادعای فقهی میکنن پاسخ لحاظا تلاش این کار پاسخه به اون سال اصلی بود که آیا این انگاره و این دعا خلاصه چگونه خواهد بود در فقه سیاسی و الان هم تلاش های خوبی رو آقای مرادی دارن ادامه میدن که انشالله مصمره به نتیجه بشه هم بحث نسبت فقه و اخلاق که از طریق غیر از آقای تون مستند بخش آقای در واقعیت سروش حرف میزنند دعایی رو مطرح میکن در حوض اخلاق و غیر از ایشون هم اخلاق خدایان را آقای اشکبری نوشتند و نقد کردن نسبت فقه و اخلاق را ادهاری مطلب میکنند واقعا این در چهره یه فقاهت ما در فقه امام صادق واقعا صورتبندی باید بشه نسبت بین فقه و اخلاق که تلاش خوبی هم شده ما هم داریم یک تلاشی از پایگاه فقه میکنیم برای این پاسخ دادن که انشالله به موقع بتونیم رونمایی کنیم من از کلام عذرخواهی می میکنم تشکر میکنم از زحمت های مجدانه مسئولین مؤسسه عالی امام رضا که زحمت کشیدند و پرسنل محترمشون از اژه خاصتاً دکتر مشکانی که واقعاً شاهد هستم واقعاً شبانه روز برای اطلاع کلمه حق تلاش میکنن از جناب آقای قاسمی که زحمت کشیدند به جهت حساسیت موضوع پذیرفتند بعضی وقتی موضوع حساس میشه بالاخره بعضی از بزرگه آقا ما توی موضوع حاضر نیستیم ناقل باشیم جناب آی صالح منش که خیلی دوست داشتم امروز خلاصه تجدید زیارتی بشه و خلاصه فیض ببریم از حضورشون که واقعا کم توفیق شدیم اختیار دارید. و جناب آی مرادی که واقعا مستاق یک پژوهشگر منصف در این تحقیق بودند و من شاهد بودم که واقعا منصفانه و علا علاقمندیشون به در واقعیت امامین انقلاب چقدر منصفانه سعی می کردن مسیر رو تو این تحقیق دور نشن از اصل در واقعیت انصاف و تحقیقشون رو در اوج انصاف بیش ببرن و آرزو توفیق خلاص روز افتر برایشون هم میکنیم خیلی محلوم هست به بفرمایید جناب آی صالی منشم با رو با با با با را با در این مورد، از است. را شما به خاطر ما تو بحث حفظ نظام مفصل ایده های فکری که ذیل در واقعیت باه تو هم هست بحث کردیم. یه بحث مفصلی هم در کلمات خود داوود بن سرحان کردیم. ما داوود بن سرحان داریم. داوود بن سرحان عطار یک داوود ابن سرحان حزا در واقع یکی رو اتار و یکی حزا یکی رو کفاش و یکی رو خلاصه اتار گفتن بعضی هم گفتن که چون این مسادیق مردده در واقع داوود ابن سرهان رو نمیتونیم در واقع به روایتش اینجا استناد بکنیم ما اونجا یه بحثی داریم ذیل کلماتشون ایشون که ایشون مسبوقه در برخی از کلمات داوود ابن سرحان همین برداشت شما وجود داره یعنی متونی از داوود ابن سرحان موجوده در قالب روایات از ایشون که نکته در واقعیت همین نکات تایید میکنه که اساساً این ایده که بهتان به معنای بهتان مستلح حقیقت فقهی رایج امروزه در نگاه نبوده و در واقع این حقیقت شرعیش با حقیقت متشرعش یه جاهایی از هم دور و نزدیک شده که حالا اینشالله اینو بتونیم تو بحث ایدهی حفظ نظام اونو مطرح بکنیم و خدمت شما باشیم اونجا هم استفاده بکن. بزرگ بار تشکر میکنم از استاد صالی منش عزیز از آقای دکتر حاسمی عزیز که به عنوان ناقض قبل زحمت کردن از سروران عرض مندم جناب آقای دکتر علوی عزیز. و آقای مرادی، عزیز تشکر. اگر سروران عجمان سوالی دارن من دیگه طولی کلام منم استفاده کردیم. استفاده استفاده کردیم تشکر از اینکه سروران عجمان قبول زرمات کردن و آقای صالحی من از شما من من خداحافظی میکنم اگر ایجازه بفرمه التماس دعا خداحافظشون میشه برادر از این نوع آقای دوشتر علبی و آقای مرادی کلاش کردن بس بس بس بس بس بس سآلات مطرح شدم پاسخ کدن که یارمان میشترزی وقت کنیم گرم کنیم تکرار کنم من با یک سلواتی جلسه رو خکم محمد شما